من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه المحسنين إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب نصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما حمد سنو سفاسو ستعيش فقد لايق سزوارك خالق عالمي كالواردقال رب العالمين جل جلاله وحمقون نبونك وهاتنشونك لدست قدرة وداية يا رب العالمين بعزمان خو اقرار دکین بقلب خو ميآقين هاي كتنبيه خداي ما و معبد ما و درسته درست و بس و ميآقين هاي بعزمان خو جام اقرار محمد مصطفى صل الله عليه وسلم عبد تيا و كه غمبت تيا كتري هنار تبو تاو ابلاغ تاو و اوجی رسالت اخوی بجیگ عن دیار بالعالمین او حتا حتا صلوات و دلود و سلا و رحمت سر سيد امام محمد مصطفاد دا اللہ الله عليه سلام و لسر روح خان و ادو اهل بیت و بطائبات خانمت ایمان اصحاب یارد مخصوصا هرچار یار خلفائد راشدین ابو بكر عمر عثمان و علي رضی الله عنهم اجمعین يا ربی صلاوت خوب بارین بر صد اهل ایمان اویک و عاشق و محب پیغمبر دنا و عاشق و محب اصحاب پیغمبر دنا الله عليه و سلام یا رب العالمین و دیدار او جماعت او هر لایان دیگه نقطه دوی دنیایی و جمع و احیا یا شعاره جمع یا رب العالمین حمیا لبن چتر رحمت خدا قرار بده و یا رب العالمین شفاعت تو ای من بریخو بکن سیب حمیا پروردگار عوید تو مشکلات و گرفتاری ها نه گرفتاری تو برطرف بکن یا رب ایوید تو قردار قریت و ان بو جی بجیبک خدا ایوید کن يا یا رب العالمین یا خدا ای شافي شفای بو و یا رب العالمین مخصوصا ایوید کو درخواست و دعای وترندون نفر نساخن حال کمای دانو وضعوان خراب تهران بستری بدون یا رب العالمین پروردگارا تو اوانش رحمتا خنا امید نک و شفای خیر بوان ریگا و شفای خیر بنا ساقط حموم مسلمان اوری گد دو نفر اعدام بوان صادر بو حكم اعدام بوان صادر بو در خاصه دعو عبات کر نیا خدایا یا رب العالمین پروردگارا تو به رحمتا نجات بک او اخساقل و بدین سفی یک درخواست و دعایید که نوجه جامع علاج حاضرن یا رب العالمین هر کشتکی مصلحت دین و دنیا وانه به نصیب وان و هر خوشگوار ایماندار و دایگای ایماندار کو که چاخو پاریه و مشکلات ظاهرا وتنها یا رب العالمین گرفتاریت دویش بفاض و کرما خو برطرف بکن امین امین یا رب العالمین جماعت ایماندار باری تعالی قران پیروز ذهن رکیت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَالَّذِينَ بَغَوْا عَلَى آيَاتِكَ وَأَمَرْتُكَ فَسَنُصْلِيهِمْ نَارًا فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ آية اول معنى أويا هل كسكيت من بجد هل كسكيت هيراويه هيراويه للريكا باري تعالا بجد دو ريكا خدارا را دو قانون الشرع و قیامت ده بدبخت ناپید معنای آیه دوم او هر کسی که پیروی بکند هدایت آمن من یعنی الیک و باری تعالی لا ندد ل و شرع منهجت خدا دانام یعنی پیروی بکند او انسانا نسبت به امور دنیوی آینده هیچ طرز سفساده کینی نسبت به آینده چون قد زانی آینده دست دا دا خدا دایق کل یصيبنا الا ما كتب الله لنا ایمان یی تنه تشتکی که خدا مقدر گره او صدا دادهی نسبت به آینداخ و طرست چنینه ولا هم یحزنون و نسبت به گذشتا خوجی هیچ حزن و اندوه و نارحتی اک چنینا. نسبت به تشتی کل دزدائی نگرانی و حزن و اندوه و غم و کلو کسر سقل به او دا او انسانانه او کتابع شرع باری تعالانه نگران نینه استراب چنینه خققان چنین، ترسولار استوانده چنینه بو چون که هل دنیای دا ویدناو بحشت دیدا انسانی که متقیبید خدا ترس بید دنیای آوشی ها بحشت دا. پیش بحشتا قیامت دیدا او مالا کو محبت و سمیمیت گره کو شرع باری تعالینا بین جنومی را احترام احتراما دا دای که بابا دیدا محفوظا ماف اولادا دیدا محفوظا وقتی کو اندام دوی مالی چنوی مالی دا مالد خوشی و سرور و کیف و شایی لدار الدوار و بان و فرشی و مالی بارن او مالها الدنيای دا و بیا بحشت باری کعالا پس او انسانانه دواقع دا هل دنيای دا و اناو رحمت باری کعالا دانا و لمن خاف مقام ربه جنتان انسانا او کل الدخص باری کعالا دا ایمان به خداوند متعالویت اینان دنه و قرصا باری تعالا بیا باعثی ویند خول هوا و حواس دنیاوی بپاریزن او انسانانه دو داد دو به حشت به حشتک یا قیامتک و به تا جاویدان و ابدیه به حشتک ایجه به حشتا دنیایی کو خدا فضل و خود دنیا بوانگیریه به حشت پس انسانی پیروی لرق و باری تعالا بکرد خداوند تبارک و تعالا لگمراهی دنیای دا ولی شقوات و بدبختی قیامت محفوظ ده کرد و معلومه اگر گمراهی و بدبختی نما مقابل ویده چه حاصل ده هدایت و خوشبختی و بختوری پس هر کسی که تابع شرع باری تعالی امنیت و آرامش و سکینت لطلب باری تعالی بیدن و سعادت و بختوری و دین و دنیا بیدن سیبه و هر کشکی کنه خوشه خداوند تبارک و تعالی سوالات بد. لطرس، نجراني، استراب، وخفقان جمراهي، شقاوت بدبخت خداواني تبارك وتعالى وإنسان تاريزي فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون البته دو نوع الترسي تنخشك براية إيمان دار ترسك بهذه الترسك باشا وكو ترس غزب باري تعالى لحالتك دار سورتك دار وإنسان تشب ونحي بيتن ترس غذاب و قهر باری تعالی س انسان تا حاکم ببینند غذاب صو و باری تعالی لسوره تا کی لریک راست انسان لرق راسرا نشیتان و ريق غفار بگید بگید پیشای کاخو در صو خداوند تبارک و تعالی وازل انسان ببینید در صو این دی خداوند تبارک و تعالی توجه به و انسان نکردن و محبت به و انسان نکرد آیه باشه او درصد سطر سکی باش دل انسان بیدن در کل كل جلال راجای هدایت دیگر امید هدایت او انسانت عین حال که خدا, امید دا خدا تبارک و تعالی امیدوار جبر رحمت او تبارک و تعالی او مقام مقام اولیاء و دوست خدای تبارک و تعالی اما انسانت کافر اوید که اصلا ایمان نیناند نه یا مسلمانت کل تلیعای ایمان دانه و تازه ایمانی دیناند نه هیچ تا حد و مقام ثبات استقامت و فرادری نگ مقام تقوی. او انسانانا وقتی که مصیبت اک داتید و کو ویندی که اولاد خویل دزدای یان دای که باب خویل دزدای یان مالیت خویل دزدای نارحتبن. نارحت غمگین و محزون و پریشانن و ترسا آینده هر دموان انسانانا نیگراند کرد ترسا ویندی مبادا دشمن حمله بگد اما مبادا مالیم ما و دال دست بچید فقر سمد آبید برسیاتی و قهت و قهتی و خوشکسالی سمه و سوالات مدابید اها او سدل انسانی به ایمان دا گله حاکمه یعن انسانی ایمان کو که هشتا ایمان آرونه که هشتی مرحله سبات و گل قاحم نبیه و هنده که او مطلبه باشتر آشکرا بیتن یعنی دواقع دا هنده که تریجی و تفصیل بدنه بحثی خو انسانیت عادی وقتی که تشتکی لدست خودن غمدین و نارحتن عذاب که درونی سوانده کو که حزن و اندوه و گل و کسره و احتمال آوه کو که آینده دا شاید تشکه خول دست بدن مثلا نگرانن کو که آینده دا مالی وان دل دست چید یا نس یان صاحب و سلامتی آونده که یوت خطری یا اولادی وانده دست چید حراسان و همیگه دا ترسک سوانده حاکمه و به عذابه که درونی به ناوی خوف و ترس مبتلات بن او نگرانیه نسبت به گذشته او، ترسا او طرسه نسبت به آینده مربوطه به انسانیت کافر یا انسانیت که مؤمنه اما ایمان و ضعیفه. اولیه و دوستت خدا اوید که طاما نی زکاتی باری تعالی طام کرنه محبت باری تعالی طام کرنه عشق باری تعالی و شرناتی و عبادت باری تعالی طام کرنه نه لآسیبت آینده و نه لذذ که زمان گذشته دار نگران و ناراحت نین ای دل اگر مال و جلفرزند است پیداست که مدت بقایش چند است خوش آن که دلش به دلبری دربند است کش با جان و اهل دل پیوند است اگر انسان دلبستگی نسبت به مال و منافع دنیوی حبیتن و نسبت به متاع دنیوی معلومه او دل باستگیا یا خوشی دوام نیست چون مدت بقای وان محدوده. حمیت تاریخ مصرف که خلاص بن فناپذیرن. اما انسانی که قلب خوب خدا واقعین کرد، انسانی که کل وجود خو متوجه رب العالمین کرد، او انسانه چون که دل و فقط خدایا، خدایی قابل زوالین و قابل فنا نیست، به او دلیل انسانه چجورا ترسو. نگرانی و ناراحتی و استرا و پریشن حالی سو انسان دانا هید اگر بر اثر غفلت و نسیانی جید دست لدست دار گناحک مرتکب بود دشتک مرتکب بود کناخ و خدا بد توبید کرد و اتظانی دار خداوانده متعال یبدیل الله و حسنات باری تعالی گناهی تو تبدیل بخیر دیگد اگر توبید کرد و گزشتا خود جبراند کرد و سعیل کرد که ماسیت خود او کرد هم میشه لحال خوشی و او انسانایه هیچ وقت نگران و نگرانی و پریشان حالی و استراب صدناویدن گورا گواند و آیتانا بومم ما بیدن هدایت اباری تعالی جامع همه سعادات و کمالات دنیوی و اخروی است انسان از نگرانی مادی سردرگمی مادی استراب و پریشان حالی دنیوی نجات داد اما نقطه مقابل دارد وَمَنْ عن عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً بَنْتَا باری تعالی عمل کرد هر کسک واضح ذکر مبینه یعنی هدایت خدا قبول نگرد دین خدا شرع خدا قبول نگرد کافر بیتن و بی ایمان بید زندگی او جیانه و جیانه که طنگه خفقان و استرابه دیده آسودگی و آسایش او انسان چنینه نسبت به گزشتاخ و محزونه و کلو کسری تی نسبت به آینده خوش جعه انسان انسانه حراسناکه و همیشه لحال تفصید آیا. بو چونکه مقصود لطنگی ها جیانی فقط اولی نکو انسان لحاظ مالی و فقیر دیده. نه. یا لانسان تند در دا حال داشی که دولمندن، سرمایه دارن اما چونکه وازل شرع باری تعالی نه ایناندنه لطنگنای دانه جینا وانطنگ خفقانه دانه حتی فشار ها وان فشار ها زورتره. اگر فقیر دردک درد ها و درد فقیری ها، او دولمند دو درد تنه. دردک دردی و هندی همیشه نگرانه. ما بادا مالی و دستو بچیتن، ما بایدام فلان کس مالی و بخودن، ما بادا مقامل ها توش زرری بیدن. همیشه نگرانه بو هندی کن مال خوب موجودی ها خوب حفظ بکر. دردی دیگه نگرانی ها دیگه یا چیه؟ یاوی هندی هم میشه سعی و تلاش و ایوی مال خود زیده کردن چون که مال دنیای مخصوصا مال حرام و که آواصور انسان ها که تینی بیدن لیوان که آواصور و خود ها آیا تینی ها که و نه هندی و خود ها و تینی درده مال حرام جمود و هندی انسان خرکت ها دیساشی بیتیر نابیدن ها تینی د طاحت رویدا او سنه همیشه حال نگرانی دائه و کو آوا سور المال حرام کو هو انسانه خرک یاره او, او انسانه انسان هیچ وقته که آسودنی نه نه دنیای دا نه در برزخ دا نه در قیامت دا یا ربی خدا ما به پارزیتن لوان حالت دا و لوان وضعیت دا و لا وان جلا انسانه نا بله کو ما آشکارات بیتن انسان اگر پیروی هدایت دا خدا کرد خداوند متعال او انسان را لطرس و حزن و زلالت و گمراهی و شقاوت و بدبختی دنیا و قیامت آداد پارزیدن نه همه موقعیت دادا خدا سعادت و بختهوری که تقسمتيبه. اما انسان کو واجب شرع هدایت باری تعالی بینیدن تکذیب قرآن و کلام و شرع باری تعالی بگدن او انسان معیشتا و تنگه و او انسان همیشه در حال خفقانداه. یک دو مثالا بگو ببینم یک هیگو بهست بیل گیتس خلق امریکای دولمندرین انسان او رو لحاظ ما دیستر و یا او انسانه مدیر سابق مایکروسافتی ثروت او گل از دوره بیشم تن او کاری گود بانگا دا های میلیارد دلار دولاره حاوتی ملیار دولار بخود بیشیدن بیشی وقتی صد دلاری اک صد دولاری اک دست نمیده بکنی تخار بکنی دست عرده کم از خخار که رو را کمه و چند که دو ثانیه سی ثانیه هندی که از خخار کمه و صد دولاری سه عرض را کمه و آنوان دو سی ثانیه ده صد دولار را پاره مدبانگی ده قازان جدیه دا. هندی که از خخار کمه و پاره عرض را کمو. چه اندازه دولمنده یک جار زور هشت نفر تنه دنیای دا هشت نویا سروت اورو یا وی دنیایی یوان حش نفرانه یا یعنی کل پاری اورو تو همه حساب بگیگ بگیگ دو قسمت بشک یا حمی آیا بشک حش نفرانه یک لون بیلگیت سر پاری وان او پاری کو اوان هی ثروت آوان مساوی یا سروت آسی میلیارد و ششصد ملیون نفری کو اورو سر یعالدنه یکی لون ازدنه او همه سروته خداوند تبارکه و تعالی ویدایی دا بیل متخانده و زندگی او چه آرزوی اکیت کردن بیشتاشی گله دولمن نبوید فقیر جی حتی واضح دانشگاه جیوی اینانده بو کسب با مادی و اوانه اوی قهنده دولمنده دی سفی یا خود دلخوشنینه سبحان الله بیشتان خوزم او سروته چنبا دو داخوازات کرد خوزه یکی او سروته چنبا چونکه هم میشه از نگرانم هر اوماللت چلیات هر بین چو هری قزانش کرد هر ضررف کرد هم میشه از نگرانم یکی خزم او شهرت چ نبانده مشغول نبام از هندی مشغول اومه نشیم خو تکاندم. هر در کتم خبر نگار دیدن او دی که دتن هم میشه خو نگرانم یک ضربی و بادا یک ضربه می بددن همهجی چار جا اوبراه خودمه به تام نژایید بودن امنیت آمامیکتی خطری داخصوم او دوندیه و سروتت چ نبا خزم او شهرتش چ نبا. هی دقت اتیم مال دنیای نشین انسان تیرکت، مقام دنیای نشین انسان تیرکت، اول پو حاوته حاوته و پنج میلیارد دلار تنه پاره اوی بانگیه. دست آجیب دل خوش نی نبپاره او، حتی بچه قرآن هکی جذبیله ماو اولاد دخو. حامی ات که لال خوراید با عقیده و دینی خو کمسلمان جنی نه ما دست خیر کلا حامی بوم اساسیت خیریه و آوانا خارج کاتن بچه از پاشجویی هیچ تشتکی بو اولاد دخو بچیناین بلاج و خشور کن و دلمنده. دی سا جدر خوشنی نبده ولی من دیافه. انسان خب مقام، به شهرت، به پاره آرامش بود پیدا نابیدن. ساله دو هزار و دهه لینگلستانی مسلمان بود. ناوی لورین بود. لورین بود دشا تونی بلیریا. تونی بلیر گوه نخست وزیر انگلستانی بود. بیران گوه تونی بلیر. خوشکا جنا تونی بلیریا لورین بود. لورین بود. مشهورترین جورنالیست و روزنامنگاری انگلستانی بی. گلا مشهوره. ها اولی زد و مشهوره. اولین بوده که پیش دا کافرگو. اکسیویت هنر به حجابه. اکسیویت قدیمی تنه. سال 2008 دا چند فلسطینی سفره کردند پوهدک تحت قطع اوانه یک دو جرات کلی. اگه سفره فکر دیروزه ولی کشتم مسلمان بیا وعجیب عجیبه کد بشه پیش دا از هم میشنن آرام بم. نیجرام بم. بلاغی. همه رسانه چاره این دیگون کنه گزارش و تحقیق و مقاله لوریم بوده چیه بارا فلان واقعی دا به هم که مشکور بود. دی از همیشه نگران بود. بو این دیگه آرامش پیدا کم گره جرات شما دریاد کشا. مواد مخدر مصرف رفت کرد. روژه دبی حد اقل لیوانک دو لیوان شراب مخارب آوان. خدا ما به زیدی آرابی. دی ساجه از نگش ما آرامشه. حتی فلسطین اگه بوبت بعضی تحقیقاتی که از شما مالکی دا جمعاجو گلا گم دا بود و ها هم تحقیقات بکنن فلسطینی ها بگن اوژنکا فلسطینیا هم فلسطینی و همیشه دفاع لحق فلسطینیا فلسطینیات کیتن مخالف دی اگه حمله کو آمریکا کره بو عراق اجراتشتانا ایجا بیو وقتی که همشون ماده دی مالکی که به خود ادا ده نفر انداموی مالی بون یعنی به نام ده نفر بود. او ده نفرنا همه اودا کده یک او تشنید وان ها اول نیکوپیش شوی مهندتش جواره و اکر بونو مالا ساده و مالا ربن ربان و فقیر دنیای و مالی داده کرد زور متاهل بون و مالی. وقتی جنگ اوی مالی در کت در کوچنک که مسلمان موسیب الله مهو بر خدا ناوچای نور لدباری. من اذکت خوش بختری نور داری. بر و جنگیم خدا یا بوچه عجین که هندا خوش حاله. ایده خود چه دشتک چنینه او سعادت دنیایی به معناه سروت اوی اما سعادت تنی مالی نه ما پیش اکی گه آخاد مکوتی وزعان گوشتوه شکر تعالی کر زستان هاوین بو رمزانش تقریبا لشدت گرمی دار فصل سالی تنی روز دهزار و حشت آنیف فصله هاوینی دار روش دریج بشی مکوتی دار بتوشی هکی اما آوکی آوکی تشتکی ن مگو تو آخه تو هنده فقیر و ندار تو بو چه روشید به گو تو از مسلمانم دو بی از روشید بهم بجو مگو تو تو بو روشید به گو تو از حال فقیر دنیای دارکم شها جماعتی تنه اولوبرسی و تینی بوینده که از حال وام دارکم بوینده که از بزانم فقیر چه حاله که دانه بجو وقتی او کلمه گود مرویت که گم دابون همه همه ساکت بون فضا سکوت سه مجلس آمده حاکم بود بدل آخوتن و کلماتت که سه عزمانا جارید بون ها رندک چاویوان انسانان آده تخریه خبر نگارید کو گمه دار خدایا ام او حمی دولمند ام خما فقیر دانین اوشن که که هتوه فقیر و کتیه خما فقیر آخو برسید کد خود تینید کد حال فقیر آدار کد مبرخ و دودا دو سعادت لپاره و مقام شهرت دانین سعادت و بختوری و روح دینداری دا. روحیا خدا پرستیده. عروجین که مسلمان بو بود. وقتی که مسلمان بود سال 2009 دامسلمان بود. بچه هات شما مالی دو کیچیت هنگام عروجین که هر هاتش میره که مسلمان گلی بو. از بود نمی. امروز وان مسلمانه. فقط جواب او. سال اول نه تو دایقا. دی هم می نیای و با قلمان دایکتی و تو دی بوم یا انبخش اسلام صلیمانی تو یوازی می نن. گویت نو ولازی ها دایکتی برو اونگو که میل باشتر دیبم. چون اسلام بودایی وظیفه ای دارند نسبت به علادا. بشه کلا کیف پوش بوم. سوال دیوی گویت نام داده دا دا دا به عزمان انگلیسی ایدی. گویت نام هری تو دی نو که باش ازش حشرابی خواه. بشه می بوده در نو ولازی. عتی اسلام از شراب حرامه. بیشی هم کیف خوش پوشی کیف پوشی از هواردن. گوتن وقتی تا شراب خورات و مست گویم امتکت ترسیان و اكو درنده اگیت تا تا به شوی ما زور زور تای پوش گون سوالاستی گوتن تو د جگرت گرت جزدیکو خرابن و کو تانگو تنگو گرت و کو کافر برتین تو دیوان برکه و که بمدا بشو دا بو چن سوالت دسن گوتو والله او جگرت تنگو و بسربر کوتکی بمدا بو مدرسه هشت گام مدرسه حتا فقط عذاب دا فقد همیت فشاریدا. زور زور کرب مالید. توضیح لی ما ونجل چی بچه موجود دانار شریعت اسلامی دستورا حجابی دا و داننده. کجایی که حق حجابی های های بید بید و هایی وظیفه و اندیایی کو خدا پوشید شکوه و کو جواهرکیه دنبی نوست داده داده. و کو زیرکیه داده. بیش ویترینی بید نابی بر دست هر کس و ناکساقی بیدن. بچه هم کیف خوش کیف خوشیا ده دا هوا دان. هر دو که چتیجی مسلمانید بینا شکر را خداوند تبارک و تعالا. اگر اولشین کد بود. بیایید نیکه و اذراتمانیو جست بید قبایل خونم و حلبیم تج آرامش احساس کم شیپل شیفل رحمت آخداست نم دعوتت آفرید پیش در کتبی نمگویند که هنگ آرام بن دویدن شراب و مواد مخدر مصرف کی؟ اما ما برای وقتی مشراب خوریم و مواد مخدر مصرف کرد چند دقیقه کوچ از آرامبوم اما پاشوی وقتی حالت مستی سمده در باست از عمل بیش را خراب کرده بود اما نکه شکر خدا دشتی کشی عمل شرابی و مواد مخدر دور بکده و تن نور مسلمانتی و نور قرآنی بود نکه به نور اسلامی و نور قرآنی الحمدلله یک جار زور آرامش و یک جار زور سکینت و آسایش سو وجود آمده حاکمه بله پیام اسلام اولیه کو قلبا آرام کرد معرض انگوگر خود باشویده اسلام برنامه به بو اسلام تنی برنامه قیامت اینی نه. لیکن مسلمانت مسلمانی تصاده و برخوب دنی بشن اسلام تنی به قیامت نه. اسلامی حاطب بیش قیامت دنیای تا آدان کرد بیش به حشت و قیامت مالا به کتب حشت بوده. هر این اسلامی چی بویندی که هم آرام بن یک معرزهن گو کرد شویدا انسان گل از ذکر باری تعالی کرد گد الا بی اللهی تطمئن القلوب تنها دشت کوم رو آرام که ذکر خدا تبارک و تعالی مخصوصا سبحان الله و بحمده یان ذکر دش خویده ما بو کامل توضیح دام خطباشويدا ان شاء الله انگو جمعهتا کو ایماندار و گهدارن عمل ذکر نه اثرات ویجی اثرات توید مثبت جی نا خودا دی ببینن یک ذکر و صلواتا گلا تاثیر هی بو آرامش جمعهتا عزیز بو خوب گنا زرد ازمان خوب گنا برنامه بو گنا بکنه قانونک روشی هزار جارا دو هزار جاره کم تر زور تر همدهن شن بجن اللهم صلی علی سیدنا محمد وعلا آله وصحبه وصالیه والله اوز ذکرت بطبعه سوی اند خدا مشکلات حل کرد بطبعه سوی اند خدا غمید منو برطرف کرد بطبعه سوی اند خدا گرفتارید منو حل فصل بکد گل تأسیلیتنا مزگینی رسولی خدا علیه صلی و سلام و سهی که دکان داره، باتاله، اتاله کانی اون بازاریه، و هیچ هر شلوک و تهاه ازمانتا هفارقه. تو که ازمان خو هذکری خدا بگی به قلبی خو توشی هذکری خدا بگی اینجا هست صلاوات صحابی که خدمت صلی الله علیه وسلم نوی ابی کعبو کرد. گودیار استون الله صلی الله علیه ما بیخوش هم میبینیم از دعایو از کم چند لون صلاوات چند لون از دعا بخود کن که مثلاً عمیر کر هندی یا خدا دعا ات خوازی که از دی دعا فقط صلوات دو ساعت از دعا ساعت میو از دی بخود دعا نیم ساعتش از صلوات باشه بوده باشدره. معرز کریم یا رسولی خدا از دعایت خوب بکم از دو پشک نویاد دعای از دعای بخوب کم نویاد کشی صلوات آداریکم امکر باشه اما تو زیدتی بکنی باشدن معرز کریم یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دعایت خوب از دو کم دو کا صلوات او بیشن که دعا بخوگم چطور امریکا رو الله لا باشه اما تو زیادت بر کیوته وقتی ما بر و پیغمبر صلی الله علیه و یا رسول خدا صلی الله علیه والله فقط از صلوات ابو وقتی خو او از ذکر و دعات کین حمی دکما صلوات گرین بو یا رسول الله صلی اگر اجتب واقع ولی خوبی نیست. توی شوالی بگی. بر دوام صلوات داری که خدا هم می‌دانه نجارانی د، زمی د، کل کسری د، حمیه خدا نمتعالب ترف دیدن. چند مسجی نیم عزنا. یادی ویو فرزندمو که خدا جنحی تجذیع کردند. پی صلوات جنحی مروج آفیت بن. چند مسجیه مزنا. اگر گفت و امکلا صلوات داری که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یا دیگه ریک و دیگه کو اسلام می میدونند بو اینکو انسان قلبی عربی آوایا کو شولا هستان بگیرن یلا شولا اولوز نگن یلا حسناست نبن به شولا لازم نا که تن هر کسکی که نگ برات ادو گت بتی بت گوت بتی خو به حساس به تو فکر ته حتما فلان کسی کو تشتایک گوت حتما بحثی ته وی گره بخو نا که فکر هند انسان عادت یوان و هر حقش ته کی رو دا بشولا به zarar آواند بر عليه وانه هر چشتگی بابی میل و باب طبع و نبوبر عليك و حساب دیگه آها انسان طبيعتونه بيت انسان مسلمون دلیت تشتی گلا تشتی دوتو تشتیت کوچ گلا پیرانچیت خبری کوچ گلا پیرانچیت یکی تشته خوب بوام يكي خراب صرف نظر ليد همه تشطا در عليه و حساب نكيه كه امبراخدني پیغمبر صلی الله عليه وسلم چه درسك اومدانان چه مزدا تو درونش تفایی پشنهوش است بدهی حتی روح هلات درونش حتی وقت الروج حالات هج شي خدا رونیش نفريد يلا خيره مروجي خدا رمتكاري پیغمبر صلی الله علیه و آله گوه خدا جماعت خونی خود دیوانا و کانی اویشی فرانسه صحابی چه خوندید که تعبیر کرد اگر کسی ندید خوندید با پیغمبر صلی الله علیه و آله خوند ناخود گرا و خوند ما اول بو یک جازر فضا که خوش بود چند خوش بیا اصحاب دو راه پیغمبر خدا صلی الله خدا بکتا نصیب ماج ان شاء الله ام دو راه خدا صلی الله علیه و آله یا ام امیدوارم خدا دعا امدی قبول کتن از حباهوت دورا پیغمبر پاش نوجاست بدهید. جامعه که مازن جی پیامزن آمریکا هیچ کس پاش اون تفقر پاش خدا بکند حتی روش وقتی که روش هلات بلند او انسان درک عتی نوجا اشراق نوجا او نبکتن خیره و هندیشیه و کویندی حجه که تمام تحقیر بیته ن عمره کامل کامل کامل جی خدا رونی افاضه ذکری خدا که حتی روش حالی دن پاشی را درک عتیس سنت بگید خیرا و همبران خیرا حج کی واجبه و عمره که عمره که کامله کامله کامل اجها بفوجل جرا مرور مازنده هتی دنیوجامعه اد. انشالله نکپ لش حسب ایران بشه نیوجامعه ای که مالی و نزیک و مسجدی نه یه امکانات هنر انشالله از بخوژی کلوان دیب منیوجامعه آدم خازد برد اجها پیامرسانم و تو حالات پیامرسان روشه کی پیغمبر نه مال نه خدا ال راضی بیدن شو مال دا ملاحظه عائشه دا خدا راضی بیدن عائشه مچه ه یا رسول الله مچت دش مالا مال دا یا رسول الله مچت دش نه مال گریا چتش او رفتار اجسایی کمدات وام شوون ام مال خو مگوت ما بو چه گوت بو الله چت دش نکری گله اما مهم زور به حسابی بوده اینی اذن ساقمون. اگه ما چت شین نمالدو، پس نیت آمنه ازی روجی بده. نیت آمنه ازی روجی بده. قانون حکفی جدانقی امام رسول سلام علی رضا، روجی یا سنت لازم نا قشوی نیتی گوبینه. ما دام وانگ سبدی رات چتش نخاروبیتن، شویتا نیت جینای نوبیتن گور روجی سنت چلی نویتن. حتی نیروتا فرصت یعنی نیت اخوبین روجی. این که خمسانی به قضی را درباز بود نه خور خانمی ناراحت نارحت کر کلو کسر دلی خدا نکره نارحتی اک دلی خدا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هدوه حیثان به قضی را درباز بود نکن که درس اک بومک امشی فیره بین امشی تشکه گله سخت نگیرین گله حساس نبن نسبت به تشکه صحابیت گرد کلسومی گره حسین بیشت ان بیابانی راد چون آخوا بیابان و آخوا کچه و خیابان آمین هده تنگا دسی میتر بید فره یا بیشت از هم قیاسا مندی بوم و خورات چون هجاری بوم از خورات چون حس بیمد چون خلحس بی پیغمبری صلی اللہ علیه وسلم ازشار بوم زون نار حد خدا یاد نه جارگی نه دجاره بیشت جاره آخری چون مخزمت پیانسا مگودی یا رسول الله بوم دعا بگد من نازنم که حس میکنم میتفر حس میت داد پیغمبر صلی الله علیه و آله تشکر حساب بکا عرو یک ماشین خوب ماشین ای دا دید دید دید داد تا پیش ماشینا نفر ایدیکا اید هندی قدرت و های دستی خودم تا سیگنال درش دیگه جنود داد عوض تا دا داوود بشنا دا کبرا چون اخلاق ما اخلاق اسلامی و اخلاق پیغمبر میینه پیغمبر چی گوت داد گوت سیر سیر حالا هاشو ها شو حس نه ها شو مهم نینه ریکا تشک عادی و طبیعیه به معنی یک دو گران حس به معنی یک دو گران ریکا چشله ان پیغمبر صلی الله علیه و آله هم در باز بود مشکنا تا غلطی چو مخزن نکا استات تا تلاقی بکا نیو شاهیوار به اوش از که نوا بک مخاطب خود با خود آورد نیو شاهیوار رو الله به هوای گرم که ما سجدا هم طولانی که صحابی چون امن بود. خدایا حتی نصب سری خوبالن نکه حتی ایدیم هنگی رام بود پاشی سری خوبالن که دست بر سجده خدا ها امام حسین امام حسین. بخود مجیب نخوش بود که از اوان بیخمل لذیذ و لعازم بدم. حتی به خود تیر لعازم تیر جهات نکار عجیب تجربه می‌کرد. تیرم آرزوالله صلی الله علیه و سلم. مرویت مازن خدمت دارند. چندین استفاده جمعاتی دیدن وجود کرده. دیگر کسای با؟ خودی بود و مثلا کجا قا نویل عیدی بود و کجا تو بود؟ بودش آوریم برد. تو بچو تعاری من اخر که دا پچو کاتب و است پشتام پیغمبر رهبر هم عالم رهبر دنیا و قیامتا اما ان شده پیغمبر صلی الله علیه و آله بری چو پچو کدا و یام پچو و حتی 하다 چو کلمز اما پیغمبر صلی الله علیه و آله سختگیر نبو بو که کوم مسلمانان فی که پیوانت تشتانه انسان آرام جنگ کبناوی ام قیسا کجا محسن کجا محسن حتی حضمتی رسول الله تازه خدا کار اقدام می‌کرد و افول جلال قدرت ها؟ طبقه خوشتی وی نبی چولتیدا رسول الله علیه و سلم رسول از هات متوجه بچو بکی تحمل اولیا بشه لال وقتی بچوته در دنیایی خو خرمی بددن پانکا دوي او زو تاثیرات باشی تنهم بز ترقی و دنیا و او دنیاوی هم قیامت کو او سنتا نو ودانم متاسفانه میشه پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی عجز نکرد کو چحات مرویت مازن ایران تا کو از دعوت نکنم الله خو پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی کرد دا بسنگ قوتی دا بسنگ خو, دا خو, خو, تارد. خو تارد و چون که خو ترک کرد کو خو ترک کرد که همه قرض صلی الله همه و بللاتیه به بالی نیست دهها ده باشه اگر ملایگ با اگر شیخ با اگر آخصقالاگ اوه با ده با حالا حالایگ ده کره با خلاناگ پیغاماس آسان جنو کش گل شرم کروه ایده شرم خودا نزدانی چون گده پیغاماس آمه مرکره اصلا نگران نبه هدشنی نه اوه بچون که هشتا شیرخوره گوهجی میزاوهجی گل نجاسته که غلیز و فلان نه هندک اوه بومین این ها به تلیخ و پروژه انده به وقتی میزه پیچوکی کره دوه لازم اگر رسخ نکواره بیتن ها فقط به تلیخ و انده او اصده به پروژه اینه ببیتا و, و خلاص بیده ششتنجی لازم نینه هم در او سرشان دو دانا بروجه و قطب خود ببیتا حل مو حشی بیده و قاعده اگر فقیشی دانا و زور به حسانی سوی تشترا در باز بیده اها اول رخت رفیق غنبدی، اول نسخه غنبدی آرام آرامشی، یا رب العالمین امتدخازین، حلوان دکار آرامش دین و دنیا بگذرسمتیم، یا رب عاقم تو ما بین سخیری، لا اله الا الله محمد رسول الله روح الله مجدار مجداب کن، یا رب العالمین مشکلاتی ما حمیت برتر بکن، شفا بونصاق جماعت خاصت بکن، قرقر درب وانجی بجیب کن، خاتم ما بین سخیری، یا رب العالمین عشق غنبدی رو قلب مدا. آرامشا دین الدنيا با کنسی بما یا رب العالمین او نسخاق الدین تاوخی خنبار تابو آرامشا قلب ارا ادانا یا رب العالمین ما موافق با کم يا رب العذاب قبر و عذاب جهنمی مودای کبابیت ما بپاریزه به حشد آبرین به جینارتیا پیغمبری کوبیدن استیبی مودای کبابیت ما حمیا یا رب العالمین علیکم خبراتی که آводان کردند دین مزدوتی تا بو جهان دند دینی تا بحمايت کردنش شریعتی تا یا رب القصرت به حشد بجنستیب مخصوصا علیکم مزدوت شهرک و شاهدی آводان کردند شر الحاز مادی و رب و و تو انداب و داریم آمین آمین یارا بر آلمین فداکن آنگاه همیاب نویسی عربی دست یک